Oh. الله که بخشینده و بارحمت رحمت است <متصفح> <متصفح> <الف> لام می این الله هست که هیچ خدای جزو نیست خدایی که زنده و پاینده است او به حق کتابی بر تو نازل کرد که کتب آسمانی پیشینیان را تایید می کند و قبل از آن تورات و انجیل را نازل کرد برای راهنمایی مردم و گرآنی فرستاد که جدا کننده حق از باطل است بدانید کسانی که آیات خدا را انکار کنند عذاب سختی در انتظار آنان است و خداوند مقدر کیفردهنده ناسپاسان است هیچ چیزی در زمین و آسمان بر خداوند بزرگ پوشیده نیست اوست که شما را در رحمها انطور که صلاح می شکل می و صورتگری می کند بدانی که هیچ معبودی جزو نیست خدایی که قدرتمند و حکیم است او همان کسی است که قرآن را بر تو نازل کرد کتابی که هم دارای آیات محکم است با حکمی روشن و واضح که این قسم اصل قرآن است و هم دارای آیات متشابه است که از نظر معنی وجوه مختلفی دارند به آنها که قلبها و نیاتشان منحرف است به خاطر ایجاد فتنه و ارائه تفسیری نادرست به سراغ متشابهات می روند. در حالی که عمق معنای ناب آنها را کسی جز خداوند بزرگ نمی‌داند. و آنان که در راه علم و دانش ثابت قدم و استوار هستند می‌گویند ما به قرآن ایمان داریم تمام آن از جانب پروردگار است. و این را کسی جز خردمندان در نمی آوند. پروردگارا، قلبهای ما را به سوی ناحق متمایل مکن. آن هم بعد از آن که هدایت و راهنمایی من کرده ای و رحمت الهی را شامل حال گردان زیرا تو بسیار بخشنده ای. ای پرورنده ما، همانا تو گرداورنده همه مردمی آن هم در روزی که هیچ تردیدی در وجود آن نیست. بدانید خداوند از وعدش تخلف نمیکند. کسانی که در زندگی راه ناسپاسی و کفر پیش گرفتند در روز حسابرسی اموال و اولادشان هیچ سودی برایشان نخواهند داشت و ناسپاسان خود هیزم آتشند زیرا آنها به شیوه فرعومیان و گذشتگانشان آیات ما را دروغ پنداشتند و به خاطر گناهانشان خداوند آنان را مورد بازخواست قرار داد و بدانید که مجازات خدا سخت است ای پیامبر به همه کسانی که کفر و ناسپاسی وجودشان را فرا گرفته بگو به زودی شما شکست خورده و سرفکنده در جهنم جمع خواهید شد و چه جایگاه است جهنم هنگامی که آن دو سپاه مجاهدان راه خدا و کفار روبروی هم قرار گرفتند در آن عبرتی برای شما بود یک گروه در راه خدا مرد می و گروه دیگر که کافر بود و کفار به چشم ظاهر مجاهدان را دو برابر می‌دیدند و این گونه است که خداوند هر کلا بخواهد یاری میده بدون تردی این برای صاحب نظران عبرت است زوینل الناس حب الشهوات من النساء والبنین والبنين وانقاطير ثروه من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والعرض ذلك متاع الحيات الدنيا والله عنده حسن الباقب بتشجمر مردم جهان مواهب دنيا از قبيل برخورداری از زنان و فرزندان و اموال هنگفت از تلاو و نقره و اسبهای ممتاز و چهارپایان و زراعت وصف انگیز شد بدانی اینها سرمایه های زندگی پست مادی است در حالی که سرانجام نیک و حیات جاودان نزد خداوند بزرگ است ای پیامبر، بگو آیا میخواهید شما را به بهتر از اینها آگاه کنند کسانی که حرمت فرمانهای الهی را نگاه دارند نزد پروردگارشان بهشتهایی دارند که نرها آن است آنها با همسرانی پاک در زیر چتری از خوشنودی خداوند جاودانه خواهند زیست و بدانید خدا به امور بندگانش بیناست همانهایی که خالصانه می‌گویند پروردگاه را ما ایمان آورده ایم نیز از گناهان ما درگذر و ما را از عذاب آتش حفظ کن همانهایی که در سختی ها در نیت و گفتار صادقند مطیع امر خدایند و برای خوشنودی خداوند انفاق می کنند و سهرگاهان بیدارند و آمرزش میطلبند شهید الله انه لا إله إلا هو والبلاء يكد وقول العلم قائما بالقسط لا اله إلا هو العزيز الحكيم قداوند گواهی میدهد که جزء او معبودنی نیست فرشتگان و حاملان علم نیز همین گواهی را می‌دهند، همون که برپاکننده عدد و داد است حقیقتا خدایی جزو نیست قدرتمند و حکیم است بدانید که دین در نزد خداوند دین اسلام یعنی تسلیم بودن در برابر حق است و اهل کتاب از آن عدول نکردند مگر بعد از آن که از حقانیت آن آگاه شدند و از روی حسادت راه مخالف پیشه کردند و هرکس آیات روشن و حیات بخش خدا را نپذیرد بداند که خدا همه حسابها را به سرعت رسیدگی خواهد کرد و اگر مجاودن ای خسمانه را با تو آغاز کردن بگو من تمامی وجودم را به خداوند واگذار کردن حتی کسانی که پیرویم می‌کنند این انگونه هستند و باز به اهل کتاب و به بی سوادان بگو آیا شما هم تسلیم خداوند بزرگ شده اید که اگر چنین کنند به راه سعادت هدایت خواهند شد و اگر هم به حقیقت پشت کنند بر تو ضرری نیست زیرا تو یک ابلاغ کننده و خداوند بزرگ بر حال بندگانش بیناست کسانی که به آیات خداوند کفر ورزیده و آن را نمی پذیرند و پیامبران را به ناحق می کشند و خون مردمی را که امر به عدالت می کنند می ریزند و عذابی دردناک بشارده دستاورد اینها در دنیا و آخرت تباخ شده است و هیچ یاوری نخواهند داشت آیا آنهایی را که ای از کتاب داشتند ندیدی؟ همین که دعوت شدند تا کتاب خدا در مورد آنها قضاوت کند ای از آنها آگاهانه روی گردان شدند و از حکم خدا سرباز زدند و این به خاطر آن است که مغرورانه گفتند فقط چند روز محدودی در آتش خواهیم بود و این دروغ و خودگول زدن باعث گستاخی آنان در دینشان شد و چه حالی خواهند داشت وقتی آنها را در روزی که در آمدنش هیچ تردیدی نیست گرد آورین و پاداش عمل کرده هر کس بی کم و کاس داده شود بی آنکسته ستمی به کسی روا گردد قلی اللهم و مالک الملک تقتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشا من من تشاء وهو تذل من تشاء بيديك الخير انك على كل شيء قدير بگو ای خداوند بزرگ صاحب حقیقی ملک و فرمان روایی تویی با آن را به هر که بخواهی می دهی و از هر که بخواهی میگیری گیری هر که را سلاح بدانی عزت و اقتدار میبخشی، و هر که را سلاح بدانی زلیل و خار میکنی. اصلا همه نیکی ها به دست تو است زیرا تو بر هر کاری توانایی شب و روز را از دل یک دیگر در میآوری، زنده را از مرد بیرون میکشی. و مرده را از وجود زنده و هر که را بخواهی رزق و روزی بیحساب تقدیم میکنی. اهل ایمان نباید به جای مؤمنان کافران ناسفاس را دوست و تکیگاه خود بگیرند پس اگر کسی چنین کند رابطه را با خدا قطع کرده است مگر آن که از آنها بپرهیزند خداوند شما را از نافرمانی خیش بر می دارد و بدانید که سرنوشت‌ها به سوی خدا خط می شود بگو ای پیامبر هرچرا در دلتان مخفی کنید و یا آشکارش سازید خداوند از آن آگاه است بلکه خداوند از آنچه در آسمان ها و زمین است باخبر است و بدانید که خدا بر هر کاری تواناست روزی که هرکس کس دستاورد خوب و بد خود را در برابرش ببیند آرزو می کند کاش میان او و دستاورد بدش فاصله طولانی بیفتد خداوند شما را از نافرمانیش بر می دارد زیرا خدا بر بندگانش بسیار مهربان است بگو ای پیامبر اگر براستی خدا را دوست دارید از من تبعیت کنید تا خدا هم شما را دوست بدارد و از گناهان و قطعهای شما درگذرد. زیرا خداوند بسیار آمرزنده و باگذشت است بگو از خداوند و پیامبرش که حکم او را میگوید اطاعت کنید چه اگر سرپیچی کنید بدانید خداوند ناسپاسان را دوست ندارد این خدا بود که آدم و نوح و خاندان ابراهیم و عمران را بر همه جهانیان برتری داد نه هایی که برخی از دل برخی دیگر به وجود آمدند و خداوند شنوا و داناست و یاد آورید هنگامی که همسر امران گفت پروردگارا را نظر کردم تا این طفلی که در شکم دارم آزادانه و با تمام وجود در خدمت تو باشد پس این نظر را از من بپذیر که توی شنوا و دانا و هنگامی که از زایمان فارغ شد گفت پرودگارا. فرزند من دختر است در حالی که خداوند از ابتدا میدانست او چه خواهد زایید و پسر هم چون دختر نیست نام او را مریم گذاشتم و او و فرزندانش را از دست شیطان رانده شده به پناه تو آورم. پس خداوند بزرگ آن دختر را با خوشنودی تمام از مادرش پذیرفت و او را به زیبایی تمام پرورش داد و سرپرستیش را به زکریا سپرد و زکریا هر وقت به مهراب عبادت مریم وارد میشد میدید می دید که در کنار او غذایی آسمانی است از او پرسید ای مریم این غذاها از کجا برای تو می و او جواب داد از جانب خداوند بزرگ و خداوند هر کرا بخواهد بدون حساب روزی می‌دهد. و اینجا بود که زکریا دست دعا به سوی پروردگارش بلند کرد و گفت پروردگارا مرا از سوی خودت فرزندی پاک و نیکو عطا کن که تو شنونده دعایی پس فرشتگان خدا او را در حالی که ایستاده در مهراب مشغول نیایش بود ندا دادند که خداوند تو را به فرزندی به نام یحیی بشارت میدهد همون که تعیید کننده کلمه خدا یعنی مسیح خواهد بود فرزندی که هم بزرگوار است و هم مبرا از هر عیب نفسانی و پیامبری از جماعت نیکوکاران است ذکریا گفت پروردگارا چگونه میتوانم فرزندی داشته باشم در حالی که پیر و سال خردم و همسرم نیز نازاست؟ پاسخ داد، اینگونه خداوند هر کاری که بخواهد انجام میدهد. قال خال اجعلی آیه قال آيتك الا تكلم الناس ثلاثه ايام الا رمزا وذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والاذكار زكريا گفت پروردگارا بر حقانیت این موضوع نشانه‌ای بر من پدیدار کن پاسخ داد نشانه تو این است که سه روز با هیچکس سخن نگویی، مگر به اشاره پروردگارت را بسیار یاد کن و در هر سوپ و شام او را تسبیح کن و یاد آورید هنگامی که فرشتگان به مریم گفتند خداوند تو را انتخاب کرده و تو را پاکیزه گردانیده و تو را بر همه زنان عالم برتری داده است ای مریم از پروردگارت اطاعت کن و او را سجده نمای و, و با تعظیم کنندگان خدا همراه شد و این از اخبار نادیده است که به تو ای پیام بر وعی میکنیم زیرا آنگاه که قرعه زدند تا مشخص شود چه کسی کفالت مریم را عهدهدار شود و کار به نزاع کشید تو در میان آنان نبودی و یاد آورید آن هنگام را که فرشتگان به مریم گفتند ای مریم خداوند تو را به کلمه از خودش که نامش مسیح عیسی، پسر مریم است بشارت میدهد او کسی است که در دنیا و آخرت آبرومند و از مقربین درگاه الهی و چه در گهوارک و چه در بزرگ سالی با مردم سخن میگوید و او بدون تردید از نیکوکاران است مریم گفت پروردگارا چگونه پسری داشته باشم در حالی که هیچ مردی با من تماس نداشته است فرمود این گونه خداوند آنچه بخواهد خلق می کند چون اراده بر کاری کند فقط میگوید باش پس بیدرنگ موجود می شود. و خداوند به او علم کتاب و حکمت و نیز تورات و انجیل را میآموزد. و او پیامبری برای قوم بنی اسرائیل است در حالی که میگوید من از جانب پروردگارتان با معجزه نزد شما آمدن میتوانم برایتان از گل مجسمهای به شکل پرنده بسازم و در او بدمم و به ازن خدا پرنده شود. میتوانم کور مادرزاد و شخص برست گرفته را شفا دهم. میتوانم به فرمان خداوند مرده را زنده کنم و حتی میتوانم شما را از آنچه که میخورید و یا در خانه هایتان زخیده کرده اید آگاه کنم و همه اینها معجزهای برای شماست امید آنکه حقایق را باور کنید تورات را تأیید می کنم و آمدم تا چیزهایی که بر اثر گناهان گذشته بر شما حرام شده حلال گردانند من با ای به فرمان خداوند به سوی شما آمدم پس حرمت فرمان خداوند را نگاه دارید و از من اطاعت کنید ان <تصفيق> الله ربي و ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. الله پروردگار من و شماست او را بپرستید که راه راست و درست همین است بنگام که عیسی کفر و ناسپاسی را در وجود آنها حس کرد گفت چه کسانی مرا در راه خدا یاری می کنند؟ و هواریون گفتند ما یاران خداوندیم و به او ایمان داریم. گواه باش که ما در این راه تسلیم خدا شدیم. ایم. ما به آنچه نازل کرده ای ایمان آورده ایم و پیامبر تو را تبعیت میکنیم پس نام همه ما را در فهرست شاهدان حق مکتوب کن ناسپاسان مکر کردند خدا هم مکر کرد بدانید خداوند بهترین مکر کنندگان است و که خدا گفت ای عیسی، تو را از میان آنها بر می و به سوی خود بالا می و از جمع ناسپاسان دور می سازم و تا روز قیامت کسانی که از تو تبعیت کردند بر ناسفاسان کفر پیشه برتری می دهم. سپس همگی شما به سوی من باز خواهید گشت و بیشک در آنچه اختلاف کرده اید حکم خواهم کرد و اما آن کسانی که کفر و ناسپاسی پیشه کردند آنها را هم در دنیا و هم در آخرت و عذابی سخت گرفتار خواهم کرد در حالی که هیچ یار و یاوری ندارند اما آنان که ایمان آوردند و عمل کردشان سراسر خوبی و خدمت است، خداوند پاداششان را تماماً پرداخت می کند بدانید خداوند ستمکاران را دوست ندارد. ای پیامبر اینها آیات و یادادری های حکیمانه است که بر تو میخانی مسئله خلقت عیسی نزد خداوند چون خلقت آدم است از خاک آن هنگام که به او گفت باش و بیدرنگ موجود شد این سخن حق از پروردگار توست پس از تردید کنندگان مباش و هر کس در این موضوع با تو به مجادل و ستیز برقیزد آن هم بعد از که بر حقیقت آگاه شده ای بگو بیایید تا هم ما و هم شما خود و فرزندان و همسرانمان را در یک جا گرد آوریم و مباهله کنیم و بیدرنگ بخواهیم تا نفرین خداوند بر گروهی که دروغ میگوید فرود آید اینها همه های درستی است و هیچ خدایی جز الله نیست. او خدایی قدرتمند و حکیم است. ای پیامبر اگر از ایمان به حقایق رویگردان شدند بدان که خداوند کاملا بر مفسدان آگاهی دارد.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 ولا نشرك به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أو من دون الله فئن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون بگو أی أهل كتاب زیر چتر کلمه و باوری که بین ما و شما مشترک است و آن چیزی نیست جز آن که غیر خداوند را نپرستیم و هیچ شریکی برایش قائل نشویم و برخی از ما برخی دیگر را سوای خداوند به پرستش نگیرند و اگر از این هم روی گردان شدند شما بگویید گواه باشید که ما تسلیم خداوند شدیم. ای اهل کتاب چرا در مورد ابراهیم مجادله و ستیز میکنید در حالی که تورات و انجیل بعد از او نازل شده است چرا عقلتان را به کار نمیاندازید گیرم در آن چه به آن علم و آگاهی دارید مجادلهتان روا باشد چرا در مورد چیزی که به آن علم ندارید مجادله میکنید در حالی که خداوند میداند و شما نمی دانید. ابراهیم نه یهودی بود و نه مسیحی بلکه هنیفی بود که تصمیم امر خداوند شده بود و در زمره مشرکان نبود بدانید کسانی که از ابراهیم تبعیت کردند و نیز این پیام بر و اهل ایمان نزدیکترین و سزاوارترین مردم به ابراهیم هستند و خداوند سرپرست اهل ایمان است گروهی از اهل کتاب آرزو دارند تا شما را گمراه و حیران کنند حالان که نمی دانند، کسی غیر از خودشان را گمراه نمی کند شعور درک این معنی را ندارند ای اهل کتاب چرا به آیات خداوند کفر می و اون را قبول نمی در حالی که شما به حقانیت آن واقفید و خود گفایید. ای اهل کتاب، چرا قامت حق را با ردای زشت باطل میپوشانید و حقیقت را کتمان می در حالی که به این امر آگاهید؟ و گروهی از اهل کتاب به خودیهایشان گفتند بروید و به آنچه بر اهل ایمان نازل شده، در ابتدای روز ایمان بیاورید. اما در انتهای روز انکارش کنید تا شاید از ایمانشان دست بردارند. باز گفتند جز آن کسی را که از دین شما تبعیت می باور نکنید. اما تو ای پیام بگو هدایت فقط هدایت خداوند است. اهل کتاب به یک گفتند تصور نکنید همانند آنچه به شما عطا شده به دیگران نیز داده شده تا به وسیله آن در پیشگاه خداوند به مجادله با شما برخیزند این الفضل بید الله من من والله ذو الفضل ای پیانبر بگو فضل و رحمت به دست خداست و آن را به هر که به می و خداوند گشاگش دهنده و داناست و هر کس را صلاح بداند رحمت خاص خود را نصیب او می کند و خداوند صاحب فضل و بخششی بزرگ است در میان اهل کتاب کسانی هستند که اگر ثروت زیادی را به رسم امانت به آنها به سپاری به تو باز می‌گردانند و نیز در بین آنها کسانی هستند که اگر حتی دیناری به آنها به امانت دهی به تو باز نمی‌گردانند مگر آنکه بر آنها مسلط باشی زیرا می‌گویند ما در به بالا غیر یهود مسئول نیستیم و این سخن کسی است که بر خدا می‌بندند در حالی که خود به باطل بودن آن آگاهی دارند. آری، هر کس به عهد خود وفا کند و پرویز حرمت آن را نگاه دارد بداند که خداوند پرویزكاران را دوست دارد و آن سوداگرانی که پیمان خدا و سوگندهایی را که خوردهاند به بهای اندک و ناچیز دنیا می فروشند بدون تردید در آخرت بهرهای نخواهند داشت و خداوند در روز قیامت با آنان نه سخن میگوید و نه حتی به دانها نظر میافکند و نه آنها را پاکیزه می گردانند. و این عذاب دردناکی برای آنهاست. و از میان آنها گروهی هستند که شیوه گفتارشان را مثل کلام خدا می کنند تا تصور کنید آنچه میگویند از کتاب خداست در حالی که ارتباطی به کتاب خدا ندارد. هرچند ادعا می کنند از سوی خدا آمده است اما چنین نیست، و آنها بر خداوند بزرگ می بندند و آگاهانه این کار را می کنند. هیچ بشری را سزاوار نیست که خدا به او کتاب و فرمان روایی و نبوت عطا کند آنگاه به مردم بگوید بندگان من باشید نه بنده خدا در حالی که سزاوار است مردمی ربانی باشید همچنان که کتاب خدا را می و درس میگیرید. و کتاب خدا به شما دستور نمیدهد که فرشتگان و پیامبران را به عنوان خدایان برگزینید مگر ممکن است شما را به کفر دستور دهد آن هم بعد از آن که تسلیم حق شده اید. و به یاد دارید هنگامی که خداوند از پیام بران پیمان گرفت حال که شما را از کتاب و حکمت بهرمند کردم به پیامبری که به سوگتان می و آیین شما را تصدیل می کند ایمان بیاورید و یاریش کنید و خدا ادامه داد آیا اقرار کردید و عهد مرا پذیرفتید همگی گفتند آری اقرار کردید و خدا گفت پس گواهی دهید من نیز همراه شما گواهی می دهم. پس هر کس از این به بعد نافرمانی کند بدون شک از زیش کاران بد نیت است افا غیر دین الله یذون و له اسلم من فی السماوات و الارض طوعا و کرها و الیه یرجع او دینی بغیر از دین خدا میخواهند، حالانکه حالان که در حقیقت هر که در آسمان ها و زمین است چه بخواهد چه نخواهد تسلیم خداوند بزرگ است و همه به سوی او باز می گردن. بگو ما به خداوند بزرگ و آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و فرزندانش و نیز آن چه به و آنچه به موسی و عیسی و پیامبران از سوی پروردگارشان داده شده ایمان داریم و هیچ فرقی بین آنها نمیگذاریم زیرا ما تسلیم محض امر خداییم و هر کس غیر از تسلیم بودن در برابر خداوند دینی برگزیند هرگز از او پذیرفته نخواهد شد و قطعا او در آخرت از زیان دیدگان خواهد بود چگونه خدا قوم کافر و ناسپاس را هدایت کند در حالی که قبلن ایمان آورده و گواهی داده بودند که پیامبر حق است و دارای دلایلی روشن است بدانید خداوند بزرگ قوم ستمکار را هدایت نمی کنند. جزای آنها این است که نفرین خدا و فرشتگان و همه مردم برانان باد و در فضای این نفرین جاودانه بمانند و در این عذاب هیچ افوی شامل حالشان نمی شود و هیچ مهلتی نخواهند داشت. مگر آنکه بعد از این توبه کنند و نیکوکار شوند. بدانید خداوند بزرگ بسیار آمرزنده و باگذشت است کسانی که ایمان داشتند سپس کافر شدند و روز به روز بر کفر و ناسپاسی خود افزودند هرگز توبه آنها پذیرفته نخواهد شد زیرا آنها همان گمراهانند آنان که نسبت به حقایق کافر شدند و با همین کفر نیز مردند اگر بخواهند به اندازه تمام کره زمین طلا بدهند تا خود را از عذاب الهی بازخرند امکان پذیر نیست برای آنها عذابی دردناک است و هیچ یار و یاوری ندارند لن تنان البر و ما تنفقو من الله به مقام شامخ نیکی نمی رسید مگران که از آن چه خود دوست دارید انفاق کنید و ببخشید و بدانید هرچرا انفاق کنید خداوند از آن آگاه است همین ها برای بنی اسرائیل حلال بود جز آنها که اسرائیل قبل از نزول تورات بر خود کرده بود و اگر غیر از این است بگو تورات را بیاورید و بخوانید اگر بر ادعایتان قا میفشارید و راست میگوید. از این پس هر کس بر خداوند دروغ و افترا بندد بدون شک از ستمکاران است بگو خدا راست میگوید پس از آیین یکتاپرستی ابراهیم تبعیت کنید زیرا او از جماعت مشرکان نبود اولین خانه‌ای که برای مردم بنا شد همانی است که در بکه است و این خانه مایه برکت و هدایت همه جهانیان است در آنجا آغیات و نشانه روشن است در آنجا مقام ابراهیم است بدانید هر کس داخل آن خانه شود در امنیت است و مردمی که استطاعت رفتن به خانه خدا را دارند باید به خاطر او حج را به جا آورند و هر کس نپذیرد و انکار کند بداند که خداوند بزرگ از همه جهانیان بینیاز است بگو ای اهل کتاب چرا آیات خداوند را انکار میکنید؟ که خدا شاهد عملکرد است بگو ای اهل کتاب چرا راه خدا را بر آنها که ایمان دارند میبندید و میخواهید که آنها منحرف شوند در حالی که خود شما گواه بر درستی راه هستید. بدانید خداوند از عملکردتان غافل نیست. ای کسانی که ایمان آورده اید مراقب باشید چنانکه که گروهی از اهل کتاب را تبعیت کنید بیشک شما را بعد از آن که ایمان آورده اید به وادی کفر و ناسپاسی باز میگردانند و چه زشت است که کافر شوید در حالی که آیات الهی بر شما می میشود و پیامبرش نیز در میان شما حضور دارد بدانید هر کی به خداوند بزرگ تمسک جوید به راه درست راهنمایی شده است یا ایها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمین ای کسانی که ایمان آورده اید حرمت اوامر خدا را در بالاترین درجه آن پاس دارید و جز به آین تسلیم نمیرید و همگی ریسمان نجات خداوندی را محکم بگیرید و فرق فرق نشوید و نعمت بزرگ خداوند را به یاد آورید آن هنگام که دشمن هم بودید و او دعال شما را به یک نزدیک کرد و به برکت نعمتش همگی برادر شدید در حالی که بر لبه پردگاه آتش بودید و خداوند شما را از آن نجات داد. این, این خداوند آیاتش را برای شما بیان می کند. امید آنکه که به راه نجات و آرامش هدایت شوید باید <تصفيق> از میان شما جمعی باشند که همواره مردم را امر به خوبی ها کنند و نهی از بدی ها نماید. و اینان رستگارانند و از کسانی نباشید که فرقه فرقه شدند و با یک دیگر اختلاف برزیدند آن هم بعد از آنکه که روشن حقانیت را دیدند بدانید برای آنها عذابی بزرگ خواهد بود روزی که اده روسفید شوند و اده سیاهرو، به آنان که سیه میگویند آیا پس از ایمان آوردنتان کافر شدید؟ پس بچشید این عذاب را به خاطر حقایقی که پوشنده اید؟ اما آنان که روح سفید و آبر در دریای رحمت خداوند جاودانند، اینها آیات خداوند است که به حق بر تو می در و خداوند بزرگ هیچ ظلمی را بر جهانیان نمی پسندند. و آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن خداست و تمامی امور به او باز می گردد. شما بهترین مردمی هستید که بر جهانیان نمایان شده است زیرا امر به معروف و نیکی می‌کنید و از بدی و زشتی باز می‌دارید و با تمام وجود خداوند را باور دارید و اگر اهل کتاب ایمان بیاورند، بیشک برایشان خیر و برکت است البته جمعی از آنان مؤمنند، اما بیشترین زشکار و بدنیتند جز آزار اندکی، هیچ خسارت دیگری را نمی توانند بر شما وارد کنند. و چون با شما جنگ کنند، شکست خورده میدان را ترک می کنند. بدانید آنها پیروز نمیشوند. هر جا که باشند ذلت و خاری آنها را محاصره کرده است و تنها مفر آنها امان خدا و امان مردم است و آنها به خشم خداوند نزدیک شدند و در تنگ نام بیچارگی و نگونبختی به سر می برند زیرا آنها آیات خدا را انکار میکردند. و پیام بران را به ناحق می و این بدان سبب بود که از فرمان خدا عسیان کردند و تجاوزکار شدند. اما همه اهل کتاب یکسان نیستند بلکه مردمانی از آنها به اطاعت خدا قیام کردند. آیات خداوند را در نیمه های شب تلاوت می کنند و از عظمت او به سجده می افتند. خداوند و روز قیامت را باور دارند و امر به نیکی میکنند و از زشتی و بدی باز میدارند و به سرعت به انجام کارهای نیک اقدام میکنند بدون شک آنها از نیک و, و هر کار نیکی که انجام دهند نادیده گرفته نمی شود و خداوند به امور حرمتگزاران حریم الهی آگاه هست. آنان که به کفر و ناسپاسی گرویدند بدانند انوال و اولادشان هیچ سودی در برابر مجازات خداوند برایشان نخواهد داشت آنها اهل آتشند و جاودانه در آن خواهند ما مسئله انفاق و بخشش کافران در دنیا مسئله است که بر کهزار قوم به خود ستم کردهی به وزد و تمام محصولات آنها را نابود کند بدانید که خداوند بر آنها ستم نکرده است بلکه خود آنها بر برخیش ستم کردند ای کسانی که ایمان آورده اید محرم اسراری غیر از اهل ایمان انتخاب نکنید زیرا دیگران از هیچ فسادی نسبت به شما کوتاهی نمی کنند و همواره آرزو می کنند در رنج و عذاب باشید کینه و دشمنی از کلامشان میبارد تازه آنچه در دل پنهان کرده اند بزرگتر است ما نشانه ها را به روشنی برای شما بیان کردیم امید آنکه عقل خود را به کار اندازید شما آنها را دوست می دارید اما آنها شما را دوست ندارد زیرا شما به تمام این کتاب ایمان آورده اید و زمانی که آنها با شما برخورد کنند گویند ایمان آورده اید و وقتی خلبت می کنند از شدت کینه و حسد نسبت به شما انگشتان خود را به دندان می گزند بگویید ای پیامبر از شدت این کینه بمیرید که خداوند به آن که در دلهاست آگاه است اگر خوبی و خیری به شما رسد غمگین می شوند و اگر شری بر شما وارد شود خوشحال می گردند بدانید اگر شما در راه حق صبور باشید و حرمت خداوند را نگاه دارید از نقشه هایشان هیچ ضرری به شما نخواهد رسید زیرا خداوند بر آنچه کنند احاطه دارد و یادار هنگامی که صوبگاه خانوادت را ترک کردی تا اردوگاه جنگی اهل ایمان را مشخص کنی بدان که خداوند بزرگ شنوا و آگاه هست و نیز بیادار هنگامی که دو گروه از شما تصمیم گرفتند تا نسبت به جهاد سستی کنند قافل از اینکه خداوند پشتیبان آنها بود و بدانید که اهل ایمان فقط بر خداوند بزرگ توکل میکنند. خداوند شما را در جنگ بعد یاری کرد در حالی که شما ضعیف بودید پس حرمت نعمت خداوند را نگاه دارید امید آنکه به مقام شاکران نائل شوید و یادار هنگامی که به اهل ایمان گفتی آیا کافی نیست که خداوند شما را با سه هزار تن از فرشتگان آسمانیش یاری کند؟ آری، امروز هم اگر استقامت کنید و حرمت خدا را نگاه دارید هنگامی که به شما یورش می آورند خداوند با پنج هزار تن از فرشتگان ممتازش شما را یاری خواهد کرد و خداوند این کار را نکرد مگر برای آن که شما شادمان شوید و قلبهایتان آرام گیرد و بدانید هیچ پیروزی وجود ندارد مگر آن که از جانب خداوند قدرتمند و حکیم باشد. به سان خداوند قسمتی از پیکره دشمن را حلاک کرد و قسمتی دیگر را خار و ذلیل و سرفکنده بازگرداند. اگر خدا بخواهد آنها را میبخشد و یا عذابشان میکند و این کار ای پیامبر، ارتباطی به تو ندارد زیرا آنها قوم ستمکارند و آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن خداست هر که را صلاح بداند میبخشد و هر که را صلاح بداند عذاب می کند خداوند بسیار آموزنده با باگذشت است ای کسانی که به حقایق ایمان داری ربا مخورید با اضافه های پیدر پیان به حرمت خدا را نگاه دارید امید آنکه رستگار شوید و بترسید از آتشی که برای ناسپاسان محیا شده است و از خداوند و پیان بر اطاعت کنید تا مشمول رحمت الهی گردید و برای رسیدن به آمرزش خداوند و نیز رسیدن به بهشتی که وسعتش به اندازه آسمان ها و زمین است از یک دیگر پیشی گرید همان بهشتی که برای حرمتگزاران حریم الهی مهیا شده است الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي و همان کسانی که چه در توانگری و چه در تنگ دستی انفاق می و انگام خشم بر نفس خویش مسلط می شوند. و از خطاهای مردم در می بدانید خداوند نیکوکاران را دوست دارد و آنان که وقتی کار زشتی مرتکب شوند و یا به خود ظلم کنند به یاد خدا میافتند و سپس برای پاک شدن گناهانشان طلب آمرزش میکنند. و غیر از خدا کیست که بتواند گناهان را معو کند و ببخشد. البته آنها چون به زشتی گناه آگاه بودند، بر ادامه آن پافشاری نکردند پاداش آنها بخشش و آمرزش خداوند و بهشتهایی است که نرها در آن جاری است و آنها در آن جاویدانند و چه پاداش خوبی است برای اهل عمل. قبل از شما آینها و سنتهای های بسیاری بوده است پس در زمین سیر و سیاحت کنی تا ببینید عاقبت آنها که حقایق را تکذیب کردند چه بوده است این برای مردم یک سخن است اما برای آنها که حرمت خدا را نگه میدارند یک راهنمایی و یک موعظه است سستی مکنید معیوس و غمگین مشوید چه شما از همه برترید اگر ایمان داشته باشید اگر در این راه به شما زخم رسد، بیشک به دشمن نیز زخمی مثل همان وارد آمده است. و این گونه روزهای تلخشیرین را میان مردم میگردانی تا خداوند اهل ایمان را مشخص کند و شاهدانی از شما برگیرد. بدانید که خداوند ظالمان را دوست ندارد. و این کار برای آن است که خداوند اهل ایمان را پاکیزه گرداند و ناسپاسان کافر را نابود کند آیا خیال کرده اید که به بهشت وارد میشوید در حالی که خداوند هنوز مجاهدان و صابران را از میان شما مشخص نکرده است پیش از آن که مرگ به سراغتان آید آن را آرزو کردید اکنون مرگ مقابل شماست و آن را میبینید محمد کسی نیست جز پیامبری که قبل از او پیامبرانی بودند آیا او اگر بمیرد و یا کشته شود شما به آین گذشتگانتان برمیگردید؟ بدانید کسی که به گذشته زشت خود برگردد به خداوند ضرری نرسانده است و خداوند به زودی پاداش شوقت کنندگان را خواهد داد و هیچ کس نمی میرد مگر به ازن خدا و آن در کتابی زمان بندی شده است هر کس خواهان پاداش دنیوی باشد به او میدهیم و هر کس خواهان پاداش حیات جاوید باشد باز به او میدهیم و به زودی شکر کنندگان را پاداش خواهیم داد و چه بسا پیامبرانی بودند که مردان الهی بسیاری همراه آنان به جنگ رفتند؟ و در راه خدا هرچه بر سرشان آمد نسوس شدند و نمعیوز و ضعفی از خود نشان ندادند و سر فرو نیاوردند زیرا خداوند استقامت کنندگان را دوست دارد و تنها سخن آنها این بود که پروردگارا گناهان ما را بیامرز و زیاد روی و تند روی ما را در کارها ببخش و قدمهای ما را استوار گردان و بر جماعت ستمکار پیروز گردان و خداوند بیدرنگ هم پاداش دنیوی و هم پاداش خوب حیات جاوید را به آنها عطا کرد و بدانید که خداوند نیکوکاران را دوست دارد ای کسانی که ایمان آورده اید چون چه از کفار اطاعت کنید آنها شما را به آیین زشت گذشتگان برمیگردانند و سرانجام زیانکار خواهید شد بلی الله آنها سرپرست شما نیستند بلکه خداوند سرپرست شماست و او بهترین یاریدهنده است و زودی در دل ناسفاسان رعب و وحشت خواهی منداخت زیرا آنان چیزهایی را شریک خدا قرار دادند که هیچ حجت آسمانی ندارد بدانید جایگاه ظالمان آدش است و چه بد جایگاهی است. خداوند به وعدهی که به شما داده بود وفا کرد آن هنگام که به خواست او دشمن را تارمار می کردید تا اینکه که شدید و در کار خود به نزاع پرداختید اما هنگامی که را که دوست داشتید غنائم وصف انگیز را به شما نشان داد و بر سر غنائم دنیوی از فرمان سرپیچی کردید ادهی از شما خواستار دنیا شدند و ادهی خواستار حیات جاودان و خدا شما را شکست داد تا امتحان کند اینک از شما درگذشت زیرا خداوند نسبت به اهل ایمان بخشنده و باگذشت است و یاد آورید هنگامی که سراشیبه از کوه بالا میرفتید و از وحشت و اقربانندگان نگاه نمی کردید در حالی که پیامبر شما را از پشت سر صدا می کرد پس خداوند غمی بر غم شما افزود برای این که بفهمید هیچگاه برای چیزی که از دست داده ای و مصیبت که به شما وارد آمده غمگین و معیوس نشوید و بدانید که خداوند بزرگ از عمل کردتان آگاه هست و بعد از غم آرامش و ایمنی را بر شما نازل کرد تا آنجا که برخی از شما را خواب آرام فرا گرفت اما گروهی دیگر که در فکر جان خیش بودند و چون زمان جاهلیت به خداوند گمان باطل داشتند گفتند یعنی می شود دوباره کار به دست ما افتد؟ بگو همه کارها به دست خداست آنها در دلهای خود چیزی را پنهان می کنند که نمی خواهند بر تو آشکار کنند و می گویند اگر حتی قسمتی از کار به دست ما بود اینجا این گونه کشته نمی شدیم به آنها بگو ای پیامبر حتی اگر در خانه هایتان هم بودید آنان که برایشان کشته شدن مقدر شده بود با پای خود به می میرفتند. زیرا خداوند شما را به آنچه در سینه دارید امتحان می کند تا ایمان را که در قلبتان است خالص گرداند بدانید خداوند بزرگ از آنچه در سینه هاست آگاه است. کسانی که در روز روبرو شدن دو سپاه فرار کردند شیطان آنها را به خاطر دستاورد گناهارودشان لغزاند اما اکنون خداوند آنها را بخشیده است زیرا خداوند بزرگ بسیار آمرزنده و بردبار است ای کسانی که ایمان آورده اید مثل کفاری نباشید که درباری برادران خود که به سفر و یا جنگ رفتند گفتند اگر پیش ما مانده بودند نه مردند و نکشته می شدند و خداوند این گمان خام را به عنوان حسرتی در دل آنها گذاشت و بدانید که این خداوند است که زنده می کند و می, می و خدا به عمل کردتان بیناست و اگر در راه اطاعت از خدا بمیرید و یا کشته شوید باکی نیست زیرا بخشش و رحمت بیکران الهی از هرچه در طول عمر میاندوزند بهتر است. و چه بمیرید و چه کشته شوید نزد خداوند محشور خواهید شد. فبما رحمت من الله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 ای پیامبر به برکت وجود رحمت الهی است که تو با مردم خوشرفتار هستی و اگر خشن و سخت دل میلودی بدون شک تو را ترک می کردند. پس آنها را ببخش و برایشان آمرزش بطلب و در کارها با آنها مشورت کن اما هنگامی که تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن زیرا خداوند بزرگ تبکل کنندگان را دوست دارد اگر خدا شما را یاری کند هیچ کس نمی بر شما مسلط شود. و اگر بخواهد شما را خار کند غیر از خودش کیست که بتواند یاریتان کند بدانید که اهل ایمان بر خداوند توکل می کند هیچ پیامبری خیانت نکند و هر کس که خیانت کند بداند را که خیانت کرده در روز قیامت با خود خواهد آورد آنگاه جزای دستاورد هرکس داده شود در حالی که به اهدی ستم نمی روید. آیا کسی که در راه رضایت خداوند قدم برمی دارد مانند کسی است که موجب خشم خدا می شود؟ در حالی که جایگاه او جهنم است و چه بد سرنوشتی است این جهنم و برای این دو گروه درجات متفاوتی است و خداوند بزرگ به عملکردشان بیناست و خداوند بر اهل ایمان منت گذاشت که پیامبری از خودشان را مبعوث کرد تا آیات الهی را بر آنها بخواند و پاکیزشان گرداند و کتاب و حکمت به آنها بیاموزد در حالی که قبل از آن در گمراهی و حیرانی آشکار بودند آیا به یاد دارید هنگامی که آسیبی در جنگ اهد به شما رسید در حالی که دو برابر این آسیب را در جنگ بعد رسانده بودید گفتید این مصیبت از کجاست؟ بگو ای پیامبر از ناهیه خودتان است خداوند بزرگ بر هر کاری تواناست آنچه آن روز در برخورد دو صفا به شما رسید به ازن خدا بود تا اهل ایمان را مشخص کند و نیز اینکه کسانی را که نفاق کردند مشخص نماید چون به آنها گفته شد بیایید و در راه خدا جهاد کنید و یا لاعقل دفاع کنید گفتند اگر به یقین میدانستیم جنگی روی خواهد داد با شما میآمدیم بدانید که آنان به کفر نزدیک نزدیکترند تا به ایمان زیرا با زبان چیزهایی میگویند که در هایشان نیست در حالی که خداوند به آنچه که میکنند کنند آگاهی کامل دارد به آنان که از جهاد امتناع کردند و درباره برادرانشان گفته بودند اگر سخن ما را شنیده بودند کشته نمی شدند بگو اگر راست میگویید مرگ را از خودتان دور کنید و مپن دارید کسانی که در راه خداوند شده شدهاند مردند بلکه آنان زندند و نزد پروردگارشان روزی دارند از فضل و رحمتی که خداوند نصیبشان کرده شادمانند و مشتاقانه کسانی را که هنوز به آنها ملحق و اند فرا می زیرا هیچ ترس و اندوهی بر آنان روانی نیست. و دیگران را مژده رحمت و نعمت الهی می دهند و اینکه خداوند پاداش اهل ایمان را زایع نمی کند کسانی که با آنکه که خوردهاند باز گوش به فرمان خدا و رسولش هستند چنانچه همواره عمل کرد نیک داشته باشند و حرمت فرمان خدا را نگاه دارند برایشان پاداشی بزرگ است آن دسته از اهل ایمان که مردم خطابشان کردند که همه علیه شما بسید شدند پس بترسید و تسلیم شوید. اما این سخن ایمانشان را تقویت کرد و قانو الله و و گفتند الله ما را کفایت می کند و او وکیل است. پس شادمانه همراه با نعمت و رحمت الهی از جنگ بازگشتند در حالی که هیچ آسیبی به آنها نرسیده بود. زیرا آنها رضایت و خوشنودی خدا را خواستند و خداوند صاحب فضل و بخشایشی بزرگ است. این شیطان است که در دل دوستدارانش دارانش میاندازد، می اندازد. ولی شما از آنها نترسید و از من خوف داشته باشید اگر حقیقتا ایمان دارید. کسانی که به سوی کفر و ناسپاسی می تو را تراغمگی نکنند آنها هیچ زرری به خدا نمی رسانند خداوند می خواهد هیچ بهره ای از آخرت نصیبشان نکنند زیرا برایشان عذابی بزرگ است آنان که ایمان را از کف دادند و به جای آن کف خریدند بدانند که هیچ زرری به خدا نخواهند رساند و برای آنها عذابی دردناک محیاب است و بی ایمانان دارند مهلتی که به آنها داده به نفع آنهاست است بلکه این مهلت را داده ایم تا آنها بر گناهانشان بیافزایند زیرا عذابی خار کننده در انتظارشان است خداوند شما اهل ایمان را همان گونه که هستید بدون آزمایش رها نمی کند مگر اینکه ناپاک را از پاک مشخص کند و خدا شما را از نادیده های غیب مطلع نمی کند. اما بعضی از پیامبرانش را که خود بخواهد برای این کار برمیگزیند. پس خدا و پیامبرانش را باور کنید و اگر ایمان بیاورید و حرمت فرمان خدا را نگاه دارید در این صورت برای شما پاداشی بزرگ است و کسانی که بخل می ورزند و از نعمتهایی که خداوند اتاقشان کرده انفاق نمی‌کنند، مپندارند که این کار به نفع آنان است بلکه است که دامنگیرشان شده و در روز قیامت را که از بخشیدنش بخل ورزیدند چون طوقی به گردنشان آویخته می گردند. و بدانید که میراث آسمان و زمین همه از آن خداست کسی چیزی با خود نمیبرد و خداوند به عمل کردتان آگاه است لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنيا سنكتب ما قالوا وقد لهم و خداوند شنید سخن آنهایی را که گفتند خدا فقیر است و ما توانگریم بدون شک هم ادعایشان را و هم اقدامشان را در مورد قتل پیامبرانی که به ناحق کشتند مکتوب خواهیم کرد میگوییم میگوین بچشید عذاب آتش سوزان را و این به خاطر دستاوردتان است زیرا خداوند به هیچ کدام از بندگانش ستم نمی کند کسانی گفتند خداوند از ما پیمان گرفته است تا به هیچ پیامبری ایمان نیاوریم مگر آنکه یک قربانی برای ما بیاورد که آتش آن را بخورد به ای پیامبر پیامبرانی هم قبل از من با معجزاتی آشکار آمدند حتی همین را که گفتید انجام دادند پس چرا آنها را کشتید اگر مدعی راستگویی هستید ای پیامبر اگر تو را تکذیب کنند بدان که پیامبران قبل از تو نیز که با دلایل آشکار و نوشتها و کتاب روشن آمدند تکذیب شدند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 دنیا متاع هر کسی تعم مرگ را می چشند. بدون شک مزد عمل کردتان را در روز قیامت خواهند داد و هر کس را که از آتش دور کنند و به بهشت بیاورند برنده و پیروز است و بدانید که این زندگی دنیا چیزی جز کالای فریب نیست شما در مورد انبال، و جانهایتان امتحان خواهید شد و بدانید هم از مشرکان و هم از اهل کتاب زخم زبان بسیار خواهید چنید و چنان صبر پیش پیشه کنید و حرمت فرمان خدا را نگاه دارید کار بزرگی انجام دادید و یاد آورید هنگامی که خداوند از اهل کتاب پیمان گرفت تا کلام خدا را برای مردم بیان کنند و کتمانش نکنند اما آنها آن را پشت سر انداختند و به بهای اندک دنیا فروختند و چه تجارت زشتی کردند مپندار آنها که از اعمال زشت خود شادمانند و حتی دوست دارند نسبت به اعمال خوبی که انجام ندادند مورد ستایش قرار گیرند در پناهگاهی دور از عذاب خدایند برای آنها عذابی دردناک ناک ملک و فرمان ربایی آسمان ها و زمین از آن خداست و خداوند بزرگ بر هر کاری تواناست سبحان حقیقتن در آفرینش آسمان ها و زمین و ام در پیه هم آمدن شب و روز نشانه برای مردم خردمند است الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى كُنُوبِهِم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا ربنا ما خلق هذا باطلا فقنا که در هر حال چه نشسته چه ایستاده و تا به پهلو خفته خداوند را یاد می کنند و در آفرینش آسمان ها و زمین تفکر می کنند اقرار دارند که پروردگارا اینها را بیهوده و باطل خلق نکرده ای تو از هر عیب و نقص مبراغی پس ما را از عذاب دوزخ حفظ فرما سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان فروردگارا هر کس را که به آتش افکنی بدون شک خار و رسوایش کرده ای. و بدانی که ستمگران را هیچ یار و یاوری نیست پروردگارا ما ندای منادی ایمان را شنیدیم که فریاد برآورده بود باور کنید پروردگارتان را پس ما نیز ایمان آوردیم پروردگارا از گناهان ما درگذر و بدیهای ما را بپوشان و ما را با نیکان بمیران پروردگارا به ما عطا کن آنچرا که از زبان پیامبرانت به ما وعده داده ای. و ما را در روز خوار مساز زیرا تو خلاف وعده خیش عمل نمی کنی پس خداوند دعایشان را اجابت کرد و گفت من؟ عمل هیچ کدام از شما را چه مرد باشد چه زن زایه نمی میکنن شما هم نوع هستید و از جنس دیگر. پس آنها که در راه خدا هجرت کردند در حالی که از خانهایشان رانده شده بودند و در راه من سختی و آزار دیدند و جنگ کردند و کشته شدند بدون تردید تمامی گناهانشان را محو میکنند و آنها را در بهشت هایی که نرها در آن جاری وارد می این پاداشی از جانب خداوند است و بهترین پاداش ها نزد خداست دادن پیروغزمندان کافران در شهرها تو را نفریبد این بهره ناچیز و چند روزه دنیاست پس از آن جایگاهشان جهنم است و چه بد جایگاهی است این جهنم اما کسانی که حرمت عوامر پروردگارشان را نگاه داشتند برایشان بهشت هایی است که نرها در آن جاری است و آنها همیشه در آنجا مهمان خدایند و بدانید آنچه نزد خداست برای نیکان بهترین است. و نیز از اهل کتاب کسانی هستند که به خداوند و آنچه بر شما نازل کرده این و آنچه بر آنها نازل شده است ایمان دارند، و برابر خداوند خازه اند و آیات خدا را به بهای اندک نمیفروشند. پاداش آنان نزد پروردگارشان محفوظ است بدون شک خداوند حسابها را سریعا رسیدگی می کند ای همه کسانی که ایمان آورده اید صبر پیشه کنید استقامت داشته باشید و همواره آماده باشید و حرمت خدا را نگاه دارید، امید آنکه لاستگار شوید. یا أيها الذي آمن و صبر و رابط و الله لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. راستگو خداوند بلند مرتبه بو از مؤسسه کاری از مسسه انبر مهر و رحمت صلی الله علیه ول وسلم